اما سومین درسی که مرتبط با اضافه هست ما و الى الجملتی وجودن و جوازن آنچه که مضاف به جمله میشه وجودن و جوازن یعنی این ظروفی که اینجا اومدن بعضی هاشون وجوبن همیشه مضاف. همیشه چی هم؟ و بعضی جایز مضاف باشند و مضاف نباشند الامثله جلستو المنظر المنظرو جمیلون نشستم جایی که منظرش زیباست اگر دقیقی در معنا به میبینید که حیث مضاف هست مضاف به جمله هست جلستو حیثو نشستم جایی که مضاف شده چی؟ جمله بعدی جلست حيث يجمل المنظر جلست حيث حيث خودش آره خودش مبنی است و بر ضمه است امثله گروه دوم جئت اذا المطر هاطل جئت و اذ حطل المطر. امسله شماره رستم اجيبك اذا دعوتني، اجيبك اذا تدعوني. در جمله دقت کنی یه جمعی بینیت جمله فعلیه است، ماضی است، فعلیه است مزاره, مزاره هست است. یا جمله اسمیه هست یا جمله مثلا فعلی است در امثله دقت کنید شماره چار نزل المطر علی الفلاحو الفلاح قالی طول او دقتی داشته باشید ما اینجا حینه رو دو تا اعراب میتونیم بدیم میتونیم بگیم نزل المطر علی الفلاه قانتون یعنی بر حسب عامل چه جایگاهی داشتون ایرابو بشمدیم اینجا مجرور اینجا حرف جر برش اومده و میتونیم کلا مبدی بر فتش کنیم بگویم نزل المترو الاحین الفلاه قانتون هذا وقت یکافا المجدون یا میتونیم بگویم ها چون اینجا خبر زمه گرفته خبر چه میتونیم مبی بر پش کنیم بگیم حاض وقت یکا مجدود. تو این های های زمانی که مبهمند داللاات بر وقت خاصی نمیکنند. مثل وقت حين برخلاف خلاف محدوده برخلاف بر خلاف جان <تبترق> خب اینجا بعد از این جمله اسمی ها در بعدیش جمله فعلی هست حط علال فرق شلی نست شماره چهار و دقت بفرمایید که در قواعد هم بی آید زور فی زمانی فضت الامتحان زور فی زمنه فصل امتحان دقت داشته باشید ما دو تا قاعده در این درس داریم قاعده این هست که قاعده هفتم میگوید حیثو و اذ اید و اضا امثله حيث رو در گروه اول بود مال اذ رو در دوم مال اذا رو در امثله گروه سوم میگه هيثو و اذ و اذا ظروفن اینا ظرف هستند مبنيتن ظرفای مبنی هستند ظرفا چی هستند مبنی هستند برخلاف امثله گروه چارون ما میتونیم مبنی برطرفشون کنیم ما میتونیم اعراب بشون بدیم آ؟ لا تضاف الا الى الجمل میگه کلمه های اذ و اذا مضافن مضافه به چه هستند مراقبه به جمله هستند باله این ها مراقبه به چ میشند این ها به مفرد نمیشند اینا مضافه به مفرد نمیشن مضافه به جمله دقت دقیق داشته باشید این سكلمه مضاف مضافه به مفرد نمیشه، مضافه به جمله میشن در سه تا گروه از همسله دقیق کنید شما میبینید که بعد از هر یکی از چی اومده خب اگر جمله ها پس اعراب دارن مثلا المنظرو جمیلون میگویم المنظرو مبتدا جمیلون خبر ولی کل جمله میشه مضافونله مضافونله حیثو بشه محلن مجروب چون ایرابه جمله چه هست؟ محلی هست بس جلستو حیف المنظر جمیلون چونین هست؟ جوزه فنیشت جان؟ چی؟ مزاد با جمله همین جمله چون مزاد با جمله مزاد با جمله شمیده چی با دوباره تستیزن میگی؟ اشی؟ با حاله جمله همیشه جمله است. همیشه، همیشه همیشه جمله هست واذا اما امثله گروه چهارم ظرفها اسمهای زمان مبهم و مبهم اون است که دلالت بر وقت غیر محدودی کند وقتش مشخص نباشه ولی یک فرقی بین خود حیثو اذ و اذاع های وجود دارد. اون فرق این هست که حیثو میتونه مضاف به جمله اسمی باشه، میتونه مضاف به جمله فعلی باشه که به معنی مزاره هست، و میتونه مضاف به جمله باشه که جمله چیست؟ مازی است. اما اذ نه، اذ مضاف به جمله اسمی میتونه باشه. مضاف به جمله فعلیه میتونه باشه ولی جمله فعلیه فقط باید به معنی چه باشه؟ ماضی باشه. اما اذا نه اذا حاشیه به جمله مضافی که اون جمله باید چه باشه؟ فعلیه باشه به جمله اسمیه مضاف نمیشه. فعلیه تو نه جمله چه ماضی باشه چه مزاره؟ فرقی نمیکنه. مهم اینه که اذا مضاف به جمله اسمیه نمیشه ایذا ولی اذ میشه چون اذ به معنی گذشته است دیگه جمله فعلیه که به معنی مضارع باشه بعد از اذ نمیاد چون اذ به معنی گذشته است گذشته است ولی ایذا به معنی چی است آینده است خب این هم نکته هایی بود که در مرتون گفتیم اما قاعده 770 ایذا اذا برای ماضی نیاد ولی برای جمله اسمیه ننیاد ماضی رو ولی به معنی مضاره میکنه ماضی رو دیگه به معنی چی میکنه؟ مستقبلش میکنه بله؟ چی نگه؟ که گفت نمو بده اجیب اذا دعوتني دعوت ماضی نیست؟ کجا ایمالا سهلتا؟ دعوت عندما رحل يا استاذ بچي ز ها بود اذا زلزلت الارض زلزله استاد اذا زلزلت مزاره دیدی که رو و خلاص دیگه جلوتر بود رو قرآن پر از مثال ذا 78 اسم الزمان المبهم ما دل على وقت غیر محدود اسم زمان المبهم اونی هست که بر وقت غیر محدودی دلالت کند و یضاف ایل الجمله والمفرد ایلا مثل اونها نیستن اونها فقط به جمله ها مضاف میشدن ايره هم به اسم زمان المبهم هم به جمله مضاف میشه و هم به مفرد کجا به مثال دومین نه اینجا کلا بر جمله است ها... در هر مثال هذا ما قال ولا این مضاف به مفرد میشن حالا به الان براتون مثال میذاریم سارقاً لسو وقت الفجر وقت اینجا مضاف به شده به مفرد جمله این مثالش هست صمتو bale اسم الز اسم الزمان المهم ما دل على وقت غير محدود اسم زمان مبهم كهذا كدل على وقت غير محدود ويدافع إلى الجملة والمفرد ومضاف بجملة بشيء ومضاف بمفرد بشيء فإذا أضيف إلى الجملة جاز إعرابه وبناءه على الفتح زمانك لقداشت وشيد زمانك اسم زمان مبهم مضاف بجملة باشه. مضاف بشيء جو جا اعرابش جایزه و ما جایزه که مبني بر و بشه جایزه که مبني بر کشو که در مثالا توضیح دادیم در امثله گروه چهارم حیل وقت و زمان مضاف به جمله اند حرف تاش مضاف می میبینیم که دو تا اعرابشون داده گفته علی خینی علی هینا هذا وقتو هذا وقت زرتک زمنی زمانی زرتک فی زمنه میتونیم دوتا دو تا تی. یا بهش اعراب بدیم یعنی اگر مجرور بود مجرورش کنیم منصوب منصوب حرکت اعراب بهش بدیم او می مبنی بر چیش کنیم مبنی بر فتح. برخطش کنیم یک مبنی برخطش کنیدش دو طرفش بنا برمون اعراب باشه بله یا بر حسب عامل اعرابش بدیم یا مبنی برخطش بدیم ولی زمانی که مضاف به مفرد بشه نه داستان فرق بله این شما خوندید در کتاب هدایه یه ولد مودخین مناس خب مناس بله لوخ بر علامت فتح بخاطر اسم الله نفي دین صف بیاي بیاي لحظه در خود کتاب شما امثله زیادی آورده. چی؟ برای مفرد من برات مثال میزنه. مثالی هم زدیم در ها تمرین شماره هشت بیا. سرق قل وقت الفاضل. اینجا وقت که اسم زمان مبهم، مضاف مفرد, مفرد هست یا جمله؟ ها؟ بابا شما تمرین شماره تمرین هشت شماره چار سری قلس و وقت الفجر دوزی کرد دوز, کر دوز به وقت فجر وقت اینجا مضاف به مفرد هست فجر فجر فجر فجر فجر فجر نه وقت و اعرابش دوتا میگیره فس که چیز دیگر میتونیم بگیرین نه اینجا دوتا اعراب نداره اینجا بر حسب آمله زمانی که مضاف به جمله باشه دو اعراب داره در این حالت مثلا شما در همین مثال تمرین تمرین شما رشی شده قد سرایی یشتد دلبرد و فی زمن شتا دیگه اینجا نمیتونیم بگیم فی زمنه چرا؟ چون اینجا زمان مضاف به مفرد یا جمله مفرد اگه مضاف به مفرد باشه بر حسب آمل اعراب میگیره زمانی دوتا اعراب داره کہ مضاف الیہ باشه به جمله باشه انشاء الله کتبه بله اینجا به خاطر اینکه مفعول فی هست سرق وقت الفض ترکیبش این هست سرقه فعل ماضی اللسوق فاعل وقت مفعول فی الفض مضاف الیه جالب بود بچه انشاء اگر شما بخونید قطر الندا یا شذور را با آن شعرهای زیبایش اونجا دیگر لذت اونجا انشاءالله